پایان نمایش قنبار زندگی تو در آن حالت پذیرش و دلاصودگی حتی اگر وضعیت خود را بد تلقی نکنیم آیا چیزی در زندگی ما اتفاق می افتد که بد باشد؟ بسیاری از بدیها حاصل جهل و ناآگاهی آدم هاست. این بدیها را ما خود میآفرینیم یا بهتر است بگویم نفس ما می آفریند. من گاهی این بدیها را نمایشی حقیر می نامم. اگر آگاه باشی نمایش های حقیر نمی زندگی تو را تیره و تار کنند. بگذار به طور مختصر نحوه عملکرد نفس را برای تشریح کنم و بگویم نمایش های حقیر زندگی ما چگونه توسط نفس آفریده می شوند. نفس، ذهن نامشهود توست که وقتی تو قایبی و به عنوان آگاهی مشاهدگر حضور نداری، او زمام زندگی تو را به دست می گیرد نفس خود را پارهای جدا افتاده در جهانی ناساز و خشن می‌داند. جهانی که در آن او هیچ ارتباطی با موجودات دیگر ندارد و فقط با نفسهای دیگری شبیه به خود احاطه شده است نفسهایی که برای او یا تهدید بالقوه تلقی می‌شوند و یا وسیله‌ای برای ارضای خواهشها الگوهای بنیادی ذهن طراحی شدهاند تا وسیلهای باشند برای جنگیدن با ترس ریشهدار و احساس کمبود نفس این الگوها عبارتند از مقاومت کنترل قدرت هرس، دفاع حمله بعضی از تدبیرهای نفس واقعا زیرکانه است با وجود این این تدبیر های زیرکانه هرگز نمی مشکلات نفس را برطرف کنند زیرا مشکل خود نفس است. وقتی نفس ها به هم می رسند چه در روابط شخصی یا در یک سازمان و یا در یک تشکیلات دیر یا زود اتفاقات بد رخ می دهد. نمایش حقیر در شکل های کشمکش مسئله سازی برتری طلبی خشونت های عاطفی یا فیزیکی و غیره این نمایشهای حقیر شامل شرارتهای جمعی نیز میشود مانند جنگ نسل کشی استثمار و غیره که همه اینها معلول ناآگاهی توده‌ای است علاوه بر اینها بسیاری از بیماریها نتیجه مقاومت مداوم نفس است مقاومتی که موجب گرفتگی مسیر جریان انرژی بدن می شود هنگامی که دوباره به هستی پیون می خوری و زمام زندگی خیش را از دست ذهن بیرون می آوری دیگر نمایش های حقیر را نمی آفرینی. گفتار و کردار و پندار بد از تو سر نمی زند وقتی دو نفس و یا نفس های بیشتر دور هم جمع می شوند خود به خود نمایشی حقیر ساخته می شود نفس حتی اگر تنها باشد باز نمایشی حقیر و یک نفره را می سازد و آن را بازی می کند وقتی نسبت به حال خود تأصف می خوری این همان نمایش حقیر است وقتی احساس گناه و استراب می کنی این همان نمایش حقیر است وقتی به گذشته یا آینده اجازه می دهی تا بر لحظه حال تو چیره شوند، سان زمان را میسازی، زمان روانی را، ملات نمایش حقیر زندگی را، هرگاه لحظه ی حال را موهبت تلقی نمی کنی برای آن ارزش و احترام قائل نیستی و به آن اجازه نمی دهی، همانطور که هست باشد، مشغول آفریدن نمایشی حقیر هستی، بسیاری از آدمها عاشق نمایش‌های حقیر زندگی خود هستند. نمایش های حقیر آنها هویت آنها شده است. نفس زمام زندگی آنها را در دست گرفته است. آنها همیه احساس خود را از خود روی این نمایش های حقیر سرمایه گذاری کردند. حتی جستجوی اغلب ناموفق آنها برای یافتن پاسخ، راه حل، و یا چارهای برای درد خود به پاره از این نمایش حقیر تبدیل می شود. آنها از این میترسند که این نمایش حقیر به پایان برسد تا موقعی که آنها ذهن خیش هستند بیش از هر چیز از بیداری خود وحشت دارند. اگر بپذیری را که هست همه نمایش های حقیر زندگی تو به پایان می رسد. دیگر کسی با تو جر و بحث نخواهد کرد هیچ کس نمیتواند با یک آدم کاملا آگاه و بیدار جر و بحث کند جر و بحث حاکی از آن است که تو خود را با ذهن خیش یکی انگاشتی. موضعی ذهنی اتخاس کردی و در برابر موزی ذهنی دیگری مقاومت میکنی و یا واکنش نشان میدهی کسی که آگاه و بیدار است وقتی مخاطب جاهلان واقع می شود فقط میگوید سلام همین و بس جر و بحث ساز و کار ناآگاهی است البته تو میتوانی منظور خود را شفاف و رساب بیان کنی اما در بیان تو اثری از واکنشی تحمیلی و یا موضعی دفاعی و حمله وجود ندارد بنابراین بیان تو به یک نمایش حقیر تبدیل نمی شود وقتی کاملا آگاه هستی، وارد نزا و درگیری نمی شوی. کسی که با خود یگانه است، حتی تصور نزا و درگیری را نیز به اندیشه خود راه نمی دهد. البته منظورم فقط نزا و درگیری با دیگران نیست، بلکه نزا و درگیری با خود نیز، مد نظر است. نزا و درگیری تو با خود، هنگامی خاتمه یابد. که دیگر بین توقعات ذهن تو و آنچه هست تضادی باقی نمانده باشد ناپایداری و چرخه زندگی با وجود این تا موقعی که در بعد فیزیکی به سر میبری و به روح جمعی بشر مربوط هستی درد جسمی اجتناب ناپذیر است گرچه زیاد نیست نباید این درد را با درد و رنج ذهنی عاطفی اشتباه کرد. همه درد و رنج های ذهنی عاطفی زاده نفسند و به دلیل مقاومت در برابر آنچه در لحظه حال هست به وجود می آیند. در زم تا موقعی که در بعد فیزیکی به سر در معرض طبیعت ادواری این بعد و نیز قانون تغییر و ناپایداری همه اشیا نیز هستی اما دیگر نباید این دگرگونی و ناپایداری را بد تلقی کنی این دگرگونی و ناپایداری چیزی است که هست همین و بس به واسطه آنکه اجازه می‌دهی چیزها و امور همانگونه باشند که هستند بعدی جرف از دل بازی از داد زاده میشود. جاودانه و پایدار آرامش و سکوتی که تغییر نمی کند شادمانی بیدلیل که فراسوی خوب و بد قرار دارد این شادمانی موهبت هستی است لطف لطیف خداوند است در سطح صورتها تولد هست و مرگ آفریده شدن و نابودی رشد و نهایتا تلاشی و تجزیه همه صورتها این چرخ را در تمامی پدیده ها مشاهده می کنیم. در چرخی زندگی یک ستاره و یا یک سیاره در چرخی زندگی بدن مادی یک درخت، یک گل در فراز و فرود ملت و تمدن و نظام سیاسی و نیز در چرخی اجتناب ناپذیر سود و زیان زندگی یک فرد در زندگی تو چرخه ترقی وجود دارد آنگاه که اوضاع چنان میشود که بوته ی گل باغچه خواهش های تو میشکفت. در زندگی تو چرخه شکست نیز هست. آنگاه که بوته ی گل باغچه خواهش های تو میپژمرد. در این صورت باید بوته پژمرده و خشکیده را کنار بگذاری تا جایی برای بوته ها و گل های تازه باز شود. و یا اینکه آن بوته را به حال خود بگذاری تا شاید در زمان و هوایی مناسب فصل دگرگونی دوباره به گل بنشیند اگر به آن بچسبی و یا در برابر آنچه واقع شده است بیستی باید بدانی که نمیخواهی با جاری زندگی جاری باشی بنابراین رنج خواهی برد چرخه زندگی مدام میچرخد چرخه زندگی بالا و پایین دارد چونین نیست که بالای چرخی زندگی خوب باشد و پایین چرخی زندگی بد البته در قضاوت ذهن چنین است رشد و ترقی همباره مثبت تلقی میشود، اما هیچ چیز در حالت رشد و ترقی مدام باقی نمیماند. اگر رشد و ترقی مدام فزونی نیافت آنگاه به مرحله هیولاوار و ویرانگر می رسید چه در زمینه ثروت، قدرت، شهرت، اعتبار و غیره این فواره هر هرچه بالاتر برود لحظه پایین آمدن خود را نزدیکتر ساخته است در جهان صورتها تجزیه و تلاشی لازم است تا زمینه برای رویش تازه ها فراهم آید در جهان صورتها هر چیزی زد خود را در دل می‌پرورد برای تحقق شکوفایی درون تجربه پایین چرخی زندگی نیز ضروری است باید در سطحی از این چرخه شکست را عمیقاً تجربه کرده باشی و طعم بحران را چشیده باشی چنان که به جایی برسی که بگویی پس کجاست نصرت و یاری موعود خداوند همین لحظه است که نقطه عطف تو برای وسال و روشن شدگی است یا شاید به اوج موفقیت های منظور خود برسی وانگاه ببینی که آنها پوچند و چیزی جز هدر دادن عمر تکرار ناپذیر نبودند در دل هر موفقیتی شکستی هست در دل هر شکستی موفقیتی هست در این دنیا یعنی دنیای صورت ها همی دستاوردها سرانجام به هیچ خط میشوند. یعنی به آن گودال سرد مکنده. آری هیچ صورتی پایدار نیست. با وجود این حقیقت هنوز می توانی فعال باشی و از آفریدن شکل و وضعیت های زندگی لذت ببری اما دیگر خود را با این شکل و وضعیت یگانه نخواهی دانست. تو دیگر به این صورتها و وضعیت نیازی نداری تا به تو احساسی از خود بدهند. این صورتها و وضعیت زندگی تو نیستند، فقط وضعیت زندگی تو هستند. وضعیت زندگی تو زندگی تو نیست. زندگی تو فراتر از همه وضعیت ممکن است. انرژی فیزیکی تو نیز دست خوش همین چرخه است. این انرژی همواره در اوج نمی ماند. انرژی بدنی تو گاهی بالاست و گاهی پایین. گاهی در اوج انرژی و خلاقیت خود هستی و گاهی به نظر می آید که همه چیز به حالت رکود در آمده است و گویی تو بر در بسته می کوبی. چرخه برای همه چیز هست. گاهی چند ساعت طول می کشد و گاهی چند سال. چرخهای وجود دارند بسیار بزرگ که چرخههایی کوچکتر را در دل خود جای دادند. بعضی از بیماریها ها نتیجه جنگیدن با چرخهایی است که از انرژی پایینی برخوردارند و برای حیات ما ضروری نیز هستند وسواس انجام دادن کاری و تمایل به ساختن هویت و احساسی از ارزشمندی خود با کمک گرفتن از عوامل بیرونی نزیر دستاوردها، مدرکها، موفقیتها توهمی است، اجتناب ناپذیر زیرا تو هنوز خود را با ذهن خود یگانه می‌پنداری. این تمایل مانع از آن می‌شود که چرخه پایین را بپذیری و به آن مجالی برای بودن بدهی. بنابر این، هوشیاری بدن تو برای حفظ خود وارد عمل می‌شود و تو را بیمار می‌کند. تا توقف کنی و مجالی بدهی تا تجدید حیات در تو عملی شود. بدن تو نیازمند آن است که مدام خود را تازه کند. در غیر این صورت در هم می شکند. طبیعت دورانی جهان بستگی شدیدی دارد به ناپایداری همه چیزها و همه وضعیتها. بودا این حقیقت را به محور های خود تبدیل کرد. همه شرایط و وضعیت‌ها به شدت بی‌ثبات‌اند و دست خوش دگرگونی ناپایداری ذات تمامی چیزهاست. هیچ وضعیتی برای همیشه یکسان نمی‌ماند. چیزها و وضعیت‌ها دگرگون می‌شوند، ناپدید می‌شوند یا دیگر ترا ارضا نمی‌کنند. گنج آرزوهای خود را روی زمین مگذار اینجا موش دارد و زنگار و دزدان نیز در کمین نشستند تا موقعی که یک وضعیت که یک رابطه باشد و یا دارایی نقش و یا مقام اجتماعی یا وضعیت بدنی به عنوان خوب مورد قضاوت ذهن قرار میگیرد. گیرد ذهن خود را به آن وضعیت می چسباند و خود را با آن یکی می پندارد این حالت تو را خوشحال می کند و باعث می شود احساس خوبی نسبت به خود داشته باشی و ممکن است این احساس پاری از تو و یا ای از تصویری شود که تو از خود در ذهن ساخته ای. اما هیچ چیز در این بعدی که موش دارد و زنگار برای همیشه دوام نمی آورد. یا به پایان میرسد رسد یا دگرگون می شود و یا به قطب ضد خود تبدیل می شود. چیزی که تا دیروز خوب تلقی میشد اکنون برایت بد شده است همان وضعیتی که روزی تو را شاد میکرد اکنون مایه غم و ماتم تو شده است دارایی امروز به مصرف زدگی هار فردا تبدیل میشود نامزدی و ماه اصل خوش امروز فردا به کشمکشی دردناک و یا طلاقی غمبار تبدیل میشود وقتی شرایط و یا وضعیتی که ذهن به آن وابسته شده و خود را عین آن میپندارد عوض می شود و یا به پایان میرسد، ذهن از قبول آن سر باز میزند. ذهن به وضعیت ناپدید شده میچسبد و در مقابل دگرگونی مقاومت میورزد. به آن میماند که عضوی از بدن کسی را قطع کرده باشند. بسیار شنیده ایم درباره ای افرادی که ناگهان برشکست شدند، و یا شهرت و محبوبیت خود را از دست دادند بنابراین دست به خودکشی زدند بعضی ها هم هستند که در چنین احوالی فقط غمگین و یا بیمار میشوند این آدمها آدم ها نمیتوانند بین زندگی خود و وضعیت زندگی خود تفاوتی قائل شوند اخیرا خبری خواندم درباره هنرپیشه مشهوری که در 80 سالگی مرد این هنرپیشه وقتی به مرور ایام زیبایی خود را از دست داد و پا به سن گذاشت غمگین و گوشگیر شد. او خود را با وضعیت زندگی خود صورت زیبایش یکی گرفته بود. ابتدا وضعیت او احساس خوبی به او میداد. او زیبا بود اما بعدها او احساس بدی نسبت به خود داشت. اگر او می توانست با حیات بی زمان درون خیش ارتباط برقرار کند آنگاه می با آرامش و لبخندی بر لب اجازه دهد تا بدنش سیر طبیعی خود را دنبال کند و او فقط شاهد باشد بیان که نسبت به سیر طبیعی بدن خیش قضاوتی داشته باشد. علاوه بر این نور بیزمان درون او می از شفافیت جسمش عبور کند و جسم را تابناک کند در این صورت. او نه تنها زیبایی صورت خود را از دست نداده بود بلکه آن را به زیبایی معنوی و آسمانی تبدیل کرده بود با وجود این هیچ کس به او نگفته بود که این استحال ممکن است آدمها ها معمولا نمی دانند آن حقیقتی را که بیش از هر چیزی به دانستن آن محتاجند بودا گفته است که در پس همه شادی های ما قمی نهفته است شادی نمیتواند از زد خود جدا باشد شادی و غم تو در حقیقت یگانهاند یکی هستند تنها توهم زمان است که شادی را از غم جدا می میکند و آنها را دو چیز نشان میدهد گمان نکن که منفی گرایی میکنم فقط میخواهم پرده را از روی حقیقت اشیا و امور کنار بزنم تا تو باقی عمر خود را در وهم و خیال زندگی نکنی وگرنه منظورم آن نیست که از لذتها اجتناب کنی و چیزهای زیبا را مختنم ندانی و شرایط بهتری برای خود فراهم نکنی منظورم آن است که از این چیزها توقعی نداشته باشی که آنها توان برآورده ساختن آن توقع را ندارند توقع یک هویت، دوام و پایداری کامیابی مدام چون این توقعاتی موجب احساس هرمان و سرخوردگی و رنج می شود اگر آدمها همه به روشن شدگی می رسیدند و در میان اشیای بیجان جان به دنبال هویتی برای خود نمی گشتند آنگاه همه صنعت تبلیغات و نهادهای مصرف و کارخانه های چیزهای بیهوده تجملاتی فرو می پاشیدند هرچه بیشتر بدین شیوه به دنبال خوشبختی بگردی، فاصله خوشبختی با خود را بیشتر میکنی. هیچ چیز که در بیرون توست نمیتواند تو را ارضا کند، مگر به طور موقتی. اما برای فهم همین حقیقت، باید توهمات بسیاری را کنار بگذاری. چیزها و وضعیتها میتوانند به تو لذت ببخشند، اما در عین حال به تو درد هم میدهند. چیزها و وضعیتها می توانند به تو لذت ببخشند اما نمی توانند تعم شادمانی حقیقی و دلاسودگی را به تو بچشانند هیچ چیز نمی تواند تو را حقیقتا شادمان و دلاسوده کند شادمانی حقیقی و دلاسودگی حقیقتی است بیالت و از درون می جوشد یعنی شور و سرمستی هستی شادمانی حقیقی و دلاسودگی پاری از ساحت آرامش است. ساحتی که ساحت خداست. فقط با خدا و در خداست که دل آرام میگیرد و خنده بر لب می نشیند. این ساحت، ساحت فطرت توست. با توست، در توست، تو را احاطه کرده است. چیزی نیست که بخواهی با کاری سخت و تلاش و مشقت به آن برسی. دولتانه است که بی خون دل آید بمیان. بسیاری از آدم ها هرگز متوجه نمی شوند که رهایی را نمی در کارها، داشتهها و دستاوردها جست. آنهایی که متوجه این نکته می دچار نوعی سرخوردگی و یأس و انزوا می شوند و میگویند اگر چنین است و هیچ چیز نمیتواند طعم کامیابی را به ما بچشاند پس دیگر چه باقی میماند که بتواند توجیه کننده تلاش ها و کوشش های ما باشد با چنین فهمی بوده است که از زبان عیوب در تورات می که من همه کارهای جهان را در پرتوب خورشید دیدم. همه آنها باطل الاباتیلند و شمعی در مساف باد. وقتی به این نقطه می رسی یک گام از یعص فاصله داری و نیز فاصله تو تا روشن شدگی یک گام بیش نیست. یک راهب بودایی روزی به من گفت همه آنچه که در عرض 20 سال شاگردی آموختم می توانم در یک جمله خلاصه کنم هر آنچه روزی پدیدار می شود روزی ناپدید خواهد شد آن راهب میخواست بگوید آموختم در مقابل آنچه که هست مقاومت نکنم آموختم به لحظه حال مجال بودن بدهم و حقیقت ناپایدار همه چیزها و وضعیت ها را بپذیرم. این گونه از که من به آرامش ژرف و پایدار رسیدم. آرامشی که زدی ندارد. در برابر زندگی نیست. مقاومت نکردن در برابر زندگی حالتی است از لطف، روشنی و سبکبالی. این حالت وابسته اشیا و وضعیت ها نیست و در فراسوی خوب و بد قرار دارد. وقتی وابستگی درونی تو به صورتها و وضعیتهای زندگی از بین می رود، صورتها و وضعیتهای زندگی تو بسیار باشکو و مطلوب و مطبوب می این نکته بسیار متناقض است. آنگاه چیزها، آدمها، وضعیتهایی که دوست داشتی داشته باشی، تا احساس شادمانی کنی، بیان آنکه بخواهی و بکوشی، سراغت می‌آیند. و تو آزادی از آنها بهرمن شوی و وجودشان را قدر بدانی البته همه این چیزها و وضعیتها نیست دست خوش چرخ چرخی زندگی اند میآیند و میروند اما چون وابستگی تو به آنها از میان رفته است دیگر از رفتن آنها وحشتی نداری زندگی آرام و ترپناک می‌گذرد شادی و خوشبختی که از منبعی دست دوم و غیر از درون تو اخص شده است ریشهدار نیست چون این شادی فقط انعکاس پرید رنگ شور و سرمستی وجود است هستی تو را به فراسوی قطبهای متزاد ذهن میبرد و از وابستگی به صورتهای فانی میرهاند آنگاه اگر دنیا بر سرت آوار شود چراغ گرم و روشن دل تو خاموش نخواهد شد ممکن است شاد نباشی اما بیتردید تردید در جرفای آرامش درون خود قنوده